من خوب من باز بیا من باز بیا را نفسی تازه کنی از جمین خوش گرها نفسی تازه کنی من باز شمید خوش دل ها نفسی تازه کنی به دل و دیده و آین ترابط بدهی از رحلت پیامبر عظیم مشن، همواره در بین معتقدان به مذاهب و فرق مختلف اختلافات عمیقی وجود داشته که حتی گاهی به خونریزی و تکفیر منجر شده است تاریخ نشان می‌دهد هرگاه عالمان و صاحبان خرد از مذاهب مختلف بدون تعصبات معمول و از راه منطق و استدلال با هم به مناظره پرداختند نه تنها مشکلی به وجود نیامده، بلکه باعث روشنگری عموم مردم شده است. مردمی که کمتر از مبانی اعتقادی خود مطلعند. یکی از این مناظرات مجلسی است که در ده شب پیاپی در پیشاور برپا شد. این شهر قبلا در هندوستان قرار داشت و اکنون در پاکستان است. طرفین مناظره سلطان الواعظین شیرازی از علما و خطبای شیعه و چند تن از علمای اهل تسنن هندوستان بودند. در این نمایش چهار قسمتی سعی شده در نقل وقایه حد اکثر امانتداری رعایت شود، ولی تغییراتی در ترتیب مباحث و اتفاقات رخداده در هر شب انجام شده است. احسن به جناب سید علی شاه، هیچ کس فکر نمیکرد کرد از بابا آلات فرنگی اینگونه گونه به کار آید خاطر شریفتان هست اولین بار که در انجامن مبحث تأسیس روزنامه پیش آمد بسیاری برادران با آن مخالف بودند گفتن که اقرار و روگلا انفسهم جایز خود من هم یکی از مخالفان بودم. ولی چون دیدم شما و جناب سید عنایت بر آن پافشاری دارید ابراز نکردم که مبادا در بین دوستان انجمن شکافی حاصل شده مخصوصاً در این ایام که انتشار در نجف از هفتگی به روزانه تبدیل شده باعث انبساط خاطب جمعی پیروان مذهب جعفری گردیده بله و اندکی از قبار قربت این سالها کاسته شده است حال تحریر امروز روزنامه چه بوده که جنابتان آنقدر با دقت مشغول مطالعه اید ظاهرن جذابیتش بیش از ایام مازی است خطابه دیروز جناب سلطان را می ولی شما که خودتان در امامباره عادل سالدار حضور داشتید و آنگونه که خاطرم هست از همه به منبر نزدیکتر بودید وقتی جناب قبله کبه در حال خطابه هستند به قدری هیجان مرا میگیرد و مجذوب تتابع ادله ایشان میشود که گاهی بعضی از فقرات خطبه را از دست میدهم ولی با مطالعه روزنامه به تمامی فرمایشات ایشان را درک میکنم به نظرتان توقف جناب سلطان الواعظین در حیات طولانی نشد؟ نکند آن مرد برای جنابشان مشکلی به وجود آورده باشد م? ناشناس و نشناختی با نام نسب خیر ولی ولی گمان میکنم یکی از برادران شافعی محله براکی باشد نکند این مرد برای جناب قبله کعبه خطری داشته باشد چه خطری میرزا احمد خان با این خطابه های قرائی که حضرت سید در دفاع از مذهب اهل بیت ایراد می میکند بعید نیست از که از شما بعید است اینها همه تبلیغ وهابی هاست که میخواهند بین شیعه و سنی فاصله بیاندازند شک نکن که هیچ خطری قبله کعبه را تهدید نمیکند پس چرا غریبه این همه اصرار میچد با ایشان تنها باشد شاید میخواسته چیزی بپرسد که دوست نداشته کسی بشنود و یا شاید نه نه نه میرزا یعقوب این شرط احتیاط نیست برخیست تا به ای به حیات بردیم و از دور اوزا و احبار را بررسی کنیم راستی دشنه از را هم شاید به کار ببخشید جناب قبلی چهبه خدا ببخشد برادران مواظب باشید که قرآن فرموده بعضی از گمانها گناه است. البته حقیر میدانم قصد هزرات خیر خواهی بوده ولی پس از این بیشتر احتیاط کنید و برادران دینی را به ناروایی متهم نکنید جناب میر احمد نیستند متاسفانه آنقدر تبلیغات سو بر ضد مذاهب مختلف صورت گرفته که برادران این به هم بدگمانند خدا لعنت کند با اصبانی ایجاد تفرقه بین برادران دینی را جسارتن این مرد چه درخواستی داشت که اجابتش این همه طول کشید این چند شبی که حقیر در اثبات خلافت بلافت و حضرت امیر و امامت یازده نفر از فرزندان ایشان سخنانی در حسینیه یا به قول شما امام باره عادل بیگ گفته بودم باعث به وجود آمدن سوالات بسیاری برای این برادرمان شده بود آمده بود که بپرسد و از شر شکی که گریبان گیرش شده خلاصی یابد. دیگر چرا میخواست در خلوت مسئله را بپرسد؟ حق دارد بنده خدا نگران از مبادا نامحرمی سخنانش را بشنود به اثر جهالت یا شیطنت به بستگانش را دهد و برایش دردسر شود جناب قبله یکبه درخواستی دارم اجازه بدهید اول حقیر از شما درخواستی داشته باشد هر چه بفرمایید به دید منت دارم من میدانم قبله یکبه از القاب مرسوم برای روحانیت در هندوستانه ولی امتنان دارم مرا از این لقب معاف کنید که سنگینی آن برای ذره‌ای چون من بسیار است بچشم امرتان حال شما درخواستتان را بفرمایید البته قبل از آن صبر کنید همین جا بنشینیم. کمی در احساس احساس می کنم خب اجازه بفرمایید دستور بدهیم برایتان زیرانداز مخضعی بیاورد برای من که لازم نیست اگر حضرات تمایل دارند، برای خودتان محیا کنید. فضای حیات منزل جناب میرزا یعقوب خان به قدری و پوشیده از ریاهین و گیاهان مختلف است که از حضور در آن خسته نمی شود. دیروز چند تن از علمای تراز اول اهل تصنن پنجاب که فلحال در پیشاور حضور دارند میرزا احمد خان مراجعه کرده بودند و از ایشان درخواستی داشتند چه درخواستی؟ در ظاهر سعی در کتمان داشتند ولی در باطن از خطابهای های اخیر شما در امامبار ناراضی بودند و میگفتند جناب قبلی کعبه ببخشید جناب سید یک طرفه به منبر رفته و عوام را گمراه کرده حال درخواستشان چه بود؟ برای مناظره با شما اعلام آمادگی کردند چه خوب دعوتشان کنید به حسینیه بیاید به نظر من آنجا مناسب چنین امری نیست شاید احساسات طرفین تحریف شود و اتفاق ناگواری بیفتد. خب پیشنهاد شما چیست؟ آیا جای خاصی را در نظر دارید؟ همین منزل حویر از همه جا مناسب تر است. هم فضا برای نشستن 200 300 نفر فراهم است هم می توان پذیرایی درخور چنین مجلسی انجام داد اگر برای شما مزاحمتی نباشد برای بنده مکان و زمان علتسویه است خب اگر اجازه فرمایید همین فردا شب بعد از نماز مغرب و اشا مجلس را برپا کنیم مانعی نیست هر چه زودتر بهتر چون من نیز فرصتی ندارم و باید زودتر آزم ایران شدن هرگز گمان نمی بردم توقفم در هندوستان این همه طولانی شود یعنی می‌خواهید ما را از نعمت حضورتان بی بهره سازید؟ نکند در منزل ما اسباب راحتی آنگونه که باید فراهم نیست خیر جناب میرزا یعقوب خان در دولت منزل شما چه خواستم و نخواستم فراهم بود ولی از موعد برگشتنم گذشته و خانواده نگران چشم است اگر برای مجلس فردا خواستهی دارید بفرمایید که فراهم کنیم یک نکته بسیار مهم تمام برادران اهل سنت را که به اینجا می آیند چون برادران خود گرامی دارید دو برابر آنچه در مجالس خود از میهمانان پذیرایی می کنید، از آنان تذیرایی کنید از جهت پذیرایی و گرامی داشتن میهمان حتی ذره نگران نباشید آری. <تصفيق> خدا خیرتان ب نظرات نکن تا نماز را به جماعت در مسجد بخوانند و بیایند کمی طول میکشند نمی‌آیند سلام, سلام, سلام, سلام و الله جناب سید آن مرد خوشقامت را میبینید که آن گوشه نشسته و چای می‌خورد همان که لباسهایش از همه فاخرتر به نظر می‌رسند آری او نباب عبدالقدیرخان یکی از اشراف و ملاکین اهل تسنن است از انسانهای آزاد اندیش دوینده است که کمتر در پیشاور نمونه دارد شهرش آشناست پای خطابه ما نبوده؟ آری بوده به امانباره عادل بیگ هم میآید. مثل اینکه حضرات تشریف آوردند سلام <تصفيق> <تصفيق> علیکم علیکم سلام و رحمت <تصفيق> الله بفرماید. بفرماید. <تصفيق> <تصفيق> تا از آقایان با چای پذیرایی می شود از جناب میزا احمد خان می باب آشنایی را باز کنند و حضرات را معرفی نمایند ایشان جناب حافظ محمد رشید و در کنارشان هم جناب شیخ عبدالسلام از اکابر و علمای تراز اول اهل تصنن هستند و جناب عبدالحی هم علاوه بر تدریس فقه امام جماعت مسجد اهل تصنن هستند با آنکه حقیر نیست چون شما میهمان میرزا گروبلی خان غزلباش هستم به نمایندگی از طرف ایشان به شما خیر مقدم عرض میکند قبل از سائل از زمان تشریف شما به پیشاور، بیانات شما باعث بحث و اختلاف نظر بسیار در آهاد جامعه شده چون بر ما لازم است که برای حل اختلاف قیام کنیم، تیه طریق کردیم و برای رفع شبهات به پیشاور آمدیم امروز هم در امامباره حاضر شدیم و مصطبع کلمات و بیانات شما بودیم چونانچه میل داشته باشید، وارد صحبت شویم و قدری از ابهامات بکاییم با کمال میل حاضرم فقط به یک شرط دیری تعصب را ببندیم و فقط بر اساس منطق و انصاف سخن بگوییم و از تعسبات و مجادلات قومی بپرهیزیم فرمایش شما بجاست. ولی ما نیز شرطی داریم بفرماید جناب حافظ شرط ما این است که از دلایل قرآنی تجاوز ننم شما اقلانی نیست یعنی علمان و عقلا مردود است چرا عقلانی نیست قبله صاحب جناب عبدالسلام بنا نشد که از همین ابتدا این گونه متغیر شوید اگر کمی صبر کنید عرض می کنم قرآن کتاب موعجز است که معانی عالی آن به مبین نیاز دارد و ما ناچاریم در اطراف کلیات قرآن به اخبار و احادیث معتبر استشهاد کنیم فرمایشتان مقبول است ولی در مواقع لزوم تقاضا دارم به روایاتی که بین هر دو مذهب شیعه و سنی مقبول است اشاره شود. اطاعت می شود بنده بنا را بر این گذاردم که حتی امکان به کتابهای علمای خودتان استشاد کنم زمنان برای اینکه که ملعبه عوام نشویم جدا تقاضا دارم از تندی و عصبانیت خودداری کنیم و حقیر نیز که افتخار انتصاب به رسول الله را دارم می بر سبیل همان حضرت اخلاق حسن داشته باشه ببخشید حال که انتصاب خود را به حضرت خاتم بیان فرمودید، میشود مختصری از نسب خود را بفرمایید؟ نسب حقیر با بیست و چند واسطه به امام موسل کازم و از آن حضرت به امیر المؤمنین علی ابن طالب صلوات الله علیهم اجمعین میرسد از نصبتان به علی کرم الله و چه میرسد رسول الله شما باید خود را از اقربای حضرت رسول بدانید نه از ایشان نسب ما به رسول الله از طرف صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیه هاست. در تکمل یعرایز جناب شیخ عبدالسلام و مزید اطلاع حضار عرض می کنم که نصب از طریق فرزندان پسر منتقل می شود نه دختر عجب است از قبله صاحب که چنین واضحی را نمیداند با این اصاف شما از دخترزادگان حضرت رسولید نه اولاد ایشان البته بنده گمان می کردم بحث ما از جنس دیگری باشد و در احوال سخنان من در حسینیه باید مناظره کنیم ولی حضرات ظاهرا از در دیگری وارد شدند به آنها هم می رسید به شما این یکی را کشف حال کنید در سایر موارد زودتر از این به بود استدلال خواهید رسید جواب اشکال شما در قرن دوم در مناظری که میان هارون و امام مصدن جعفر واقع شده آمده است خوشحال میشویم بدانیم نتیجه مناظره چه بوده است هارون به امام کازم همین اشکال را وارد می کند و حضرت در پاسخ آیه 84 از سوری مبارکه انعام را قرائت می کند مم. که آمده و از نسل ابراهیم داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و هارون را هدایت کردیم. و این چنین را پاداش نیک می دهیم. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه از شایستگان بودند. این آیه چه ارتباطی به مورد بحث ما دارد؟ جناب عبدالسلام بله از شما می‌پرسم پدر عیسی که بود از می می‌پرسید. عیسی پدری نداشت بار دیگر به آیه دقت کنید خدا عیسی را با اینکه پدر نداشت از طریق مادرش مریم به زوریه انبیا ملحق کرد از ما نیز از طریق مادر من حضرت زهرا به زوریه حضرت رسول ملحق می شدید. البته شما آیه را به سود خود تفسیر کردید از ظاهر آیه چنین بده می آید من این کار را نکردم علمای خودتان در این امر از ما سبقت گرفتن علمای ما می شود بیان کنید بله امام فخر رازی در جلد چهارم تفسیر کبیر در زیل این آیه آورده که بنابر این آیه حسنین زوریه رسول الله هستند. قصد جدل نداریم ولی این دلیل واضحی برای چنین نتیجه نیست آیه یه شست و یک سوره مبارکه ی آل امران را که شنیده اید اوی. در قضیه مباهله حضرت رسول با نصارا می گوید بیایی پسران و پسرانتان زنانمان و زنانتان و جانهای و جانهایتان را فراخوانی. میدانید حاضران همراه حضرت چه کسانی بودن؟ ظاهرا علی کرم الله بچه و همسر زهرا و حسدین با ایشان بودند احسد؟ دوست دارید بر طبق کتب علمای خودتان این آیه را تفسیر کنم؟ مشتاقی که بشنویم مشتاقی. ابن عبل حدید معتزلی در شرح نهج بلاقه و ابو بکر رازی در تفسیر خود و محمد ابن یوسف شافعی در کفایت و طالب و خطیب خارزمی در مناقب و بسیاری دیگر از بزرگان مذاهب مختلف اهل تسنن گفتند که منظور از انفسنا در آیه شریف حضرت امیر و مقصود از نسا حضرت صدیقی کبرا و مراد از ابنا انا حسنین است آیا دلیلی محکمتر از این میخواهید؟ شاید به خاطر شدت علاقهی که حضرت رسول به حسنین داشته اند در قرآن از آنها به ابنا انا تعبیر شده و منظور زوریه نباشد پس گوش کنید حدیث صحیح و از کتاب از سبا اقل نوشته ابن حجر مکی که از علمای کبار خود تانست می خانم که رسول الله فرمودند خدای عزوجل ذریه هر پیامبر را در صلب خودش قرار داد و زرریه مرا در صلب علی ابن عبی طالب سلوات الله علیه موردید که امروز در خطابه شما در امامباره مرا آزار داد و اکنون نیز دوباره مشاهده شد اجازه می دهید بیان کنم؟ بفرمایید که اگر منطقی باشد مورد آزار دهنده شما را رفت می کنه. چرا شما پس از نام بردن از اعمه خودتان به خصوص علی ابن طالب به جای گفتن رضی الله عنه یا کرم الله وجه می فرمایید الله علیه اگر نمی دانید خدا در آیه 56 و شش احزاب را مخصوص پیامبر دانسته است ولی هیچ که این کار شما بدعت است و خلاف نفس قرآن البته چون این مسئله برای قاطبی مسلمانان هر شده است ولی چون هزرات قصد دارند از هان را از قضیه رسیدن نصب سادات به حضرت رسول منحرف کنند چون این را وارد می ما به قاتبه عوام کاری نداریم اگر پاسخی دارید می‌شنویم، وگر نه بپذیرید چون بسیاری از احکامتان خلاف نص عمل کرده اید. خواهش دارم که در میان دعوا نرخ تعیین نکنید. من به تک تک شبهات شما پاسخ خواهم کنم. اولا آیه الله و او، من ای برای سلام و سلوات به کس دیگری ندارد. فقط میگوید بر پیام بر سلوات بفرستید. ولی در جای دیگر قرآن آیه سد و از سوره مبارکی صافات آمده سلامون علا آل یاسیم و ربط این آیه به بدعت شما چیست؟ حضرات بهتر می دانند که در قرآن برای مزید بینایی پنج اسم از دوازده اسم شریف حضرت رسول آمده است محمد، احمد، عبدالله، نون و یاسیم چهار اسم اول قبول ولی این آخری را شما از خود جل کرده اید که لابد بعد بگویید چون یاسین نام پیامبر است پس بدعه در کار نیست اولا که شما مرا از استدلال بی نیاز کردید چون دقیقا همین هدف را داشتند. ثانیه این مطلب جعل بنده نیست در کتاب های علمای خودتان مخصوصا متعصبی این معنا آمده بسیار بعید میدانم چنین مطلبی در کتب مقبول آمده باشد بعید نمیدانید و یقین دارید که هست ولی من باب تجاهل العارف قصد دیگری دارید ابن هجر در کتابش از قول جماعتی از مفسرین و به سند ابن عباس آورده که مراد از آل یاسین در آیی شریفه آل محمد است. این معنا در بسیاری از کتب دیگر شما نیز دیده می شود. ولی در صحیحین چنین مطلبی نیست هست و خودتان هم بهتر میدانید که هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم با سند صحیح این حدیث آمده که بین من و اهل بیت من در سلوات جدایی نی و بیشک علی از اهل بیت پیامبر است که درود خدا بر او و آلش. هنگام نماز اشاز پس از نماز دوباره خدمت میرسی من آماده شنیدن فرمایشات شما هستم